سوره تحريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا ایوه النبی لما تحرم ما أحل الله لك تبتغی مرضات ازواجك والله غفور رحیم به الله که بخشا گنده با رحمت است ای پیانبر چرا چیزی را که خداوند بر تو حلال کرده به خاطر جلب رضایت هم سرامت بر خود حرام می بدان که خداوند آمرزنده و با رحمت است خداوند راه گشودن قسمهایتان را بیان کرده است زیرا خداوند مولای شماست و او آگاه و حکیم است هنگامی که پیامبر با یکی از زنانش رازی در میان گذاشت و آن زن راز را فاش کرد خداوند پیامبر را آگاه نمود و پیامبر نیز قسمتی از آن را به زن گفت و قسمتی را بیان نکرد پس آن هنگام که زن را آگاه کرد همسرش گفت چه کسی این خبر را به تو رسانده پیانبر گفت خدای دانا و آگاه با خبرم کرد اگر شما دوزن توبه کنید برایتان بهتر است زیرا هایتان از حق منحرف گشته است و اگر برای آزار پیامبر هم دست شوید بدانید که خدا مولای اوست و بعد از آن جبرئیل و مؤمنان شاگسته و فرشتگان پشتیبان اویند شاید اگر او شما را طلاق دهد خداوند همسرانی بهتر از شما به او عطا کند همسرانی مسلمان مؤمن فرمانبردار، بردار عابد آبد خواه بیوه باشند خواه باکره ای اهل ایمان خود و خانوادتان را از آتشی که هیزمان از مردم و از سنگست سیانت کنید آتشی که مسئولیت آن به فرشتگانی داده شده که خشن و سخت گیرند و هرگز نافرمانی خدا نمی‌کنند و پیوسته کاری را انجام میدهند که بران معمور شدند ای کسانی که به حقایق کافرید امروز عوض خواهی زیرا شما مجازات عمل کردتان را میکشید یا <تصفيق> ایوها الذین آمنوتوهو الى الله توبتا نصوحا عسارا كم أي يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يفصل الله النبي والذين آمنوا معه. يسع بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اي أهل ايمان بسوي خداوان توبه يك توبه حقیقی امید ان پروردگارتان از گناهانتان درگذرد و شما را به بهشت هایی که نهرها ها در آن جاری است وارد نماید همان روزی که خدا پیامبر و کسانی را که با او ایمان آوردند خار نمی کنند نور وجودشان از جلو و سمت راستشان در حرکت است و میگویند پروردگارا نور ما را کامل کن و ما را بیامرز زیرا تو بر هر کاری توانایی ای پیامبر با کفار و منافقان به جهاد برخیز و بر آنها سخت بگیر زیرا جایگاه آنها جهنم است و چه بد سرنوشتی است این جهنم خداوند برای اهل کفر همسر نو و همسر لوت را مثال میزند در حالی که تحت سرپرستی دو بنده از بندگان شایسته ما بودند ولی به آن دو خیانت ورزیدند و کاری از دست آنها در برابر خدا ساخته نبود و به آن زن گفته شد هر دو وارد آتش شوید آن هم با کسانی که وارد می شوند و برای اهل ایمان همسر فرعون را مثال میزند آن هنگام که گفت پروردگارا برای من خانه نزد خودت در بهش بنا کن و مرا از دست فرعون و عملکردش نجات بخش و مرا از دست ظالمان برهان و نیز مریم دختر امران را مثال میزند کسی که پاکدامنی خود را حفظ کرد و سرانجام مانیز از روح خودمان آن دمیدی مریم کلمات و کتاب پروردگارش را تصدیق کرد زیرا او از فرمان برداران الهی بود و مویم عمران و صدقت بکلمات ربها و کتبه من صدق الله العلي العظيم. <تصفيق> کاری از مؤسسه پیامبر مهر و رحمت صلی الله علیه و علیه و سلم.